در زمانهای خیلی قدیم زن و شوهری بودند که برای اونا بچه نیمی شود. زن خیلی ناراحت بود و مرتب میگفت در زندگی خود بچه ای نداریم تا ما را سرگرم کنه و در پیری غمخارمون باشه. روزی شوهرش به جنگل رفت و یکی از شاخهای درخت رو اره کرد و اونو به زنش داد و گفت حالا این شاخه رو به جای بچهت بگیر و او رو توی گهواره بذار و تکون بده. زن شاخه درخت رو بین گهواره گذاشت و به تکون دادن و آواز خوندن پرداخت و می گفت پسر کاکلی من، چشم سیاه من، لالا کن، لالا کن یه روز، دو روز، سه روز گهواره رو با اون شاخه بریده تکون داد بعد از مدتی میان گهواره به جای شاخه درخت بچه کوچکی رو دید زن و شوهر فوق‌العاده خوشحال شدند و نام پسرشون رو شاخه بریده گذاشتند و به تربیتش پرداختند. شاخه بریده وقتی بزرگ شد روزی به پدرش گفت: پدرجان باید برای من یک قایق طلایی درست کنی که پاروهاش از نقره باشه تا من بتونم با قایق به سید ماهی بپردازم. پدرش پذیرفت و براش یک قایق طلایی درست کرد که پاروهاش از نقره بود. و او رو برای سید ماهی به سخر فرستاد شاخه بریده شب و روز به سید ماهی مشغول بود و تعداد ماهی اینقدر زیاد بود که او فرصت نمی کرد به خونه برگرده ناچار مادرش غذا تهیه می کرد و اونا کنار استخر می برد و فریاد می زد شاخه بریده شاخه بریده زود باش بیا کنار ساحل و غذات رو بخور شاخه بریده هم به طرف ساحل می اومد ماهی ها رو حمل میکرد و غذای مختصری میخورد و دوباره به طرف سخبر برمیگشت میگشت و کارش رو از نو شروع می کرد در اون حوالی جادوگری بود به نام بابایاگا. این جادوگر متوجه شد که چطور مادرش شاخه بریده رو صدا میکنه کنه و اونو به طرف ساحل میخونه. بعد کیسه ای رو پر از سیخ کباب کرد و به سخ نزدیک شد و فریاد زد شاخه بریده شاخه بریده زود باش بیا کنار ساحل بیا غذا تو بخور شاخه بریده به خیال اینکه مادرش غذا آورده فوراً به طرف ساحل اومد بابا یگا قایقش رو با یکی از سیخهای محکم گرفت و اون رو روی شن کشید و شاخه بریده رو گرفت و میان کیسه قرار داد بعد فریاد زد تا دیگه نمیتونی ماهی بگیری؟ کیسه رو روی کولش گذاشت و میان جنگل رفت. مدتی راه رفت خسته و کوفته شد و در گوشه نشست و به خواب رفت. شاخه یه بریده از کیسه در اومد اونو پر از سنگ کرد و دوباره به سخر برگشت. بابایاگاه از خواب برخاست، کیسه رو برداشت در حالی که نفس نفس میزد به خونش رسید و رو به دخترش کرد و گفت: این ماهیگیرو رو بگیر و کبابش کن. بابایاگاه کیسه رو تکون داد. اما تنها سنگهایی بود که از اون سرازیر میشد. جادوگر خیلی عصبانی شد و بنای داد و فریاد گذاشت و گفت: من الان نتیجه این کارتو بهت نشون میدم. به طرف ساحل اومد و شاخه بریده رو صدا زد و گفت: شاخه بریده، شاخه بریده، بیا کنار ساحل و غذا تو بخور. شاخه بریده جواب داد: تو مادرم نیستی، بلکه یک جادوگری. من تو رو میشناسم. زود باش از اینجا برو. مادرم صدای نازکی داره. بابا یگا خیلی صدا زد ولی شاخه بریده به حرفش اعتنایی نکرد بابا یگا فکری کرد و گفت بسیار خوب باید برم صدام رو نازک کنم بنابراین پیش آهنگر رفت و بهش گفت تو باید زبونم رو سوهان بزنی و اونو تیز کنی آهنگر گفت بسیار خوب اونو روی سندان بذار تا برات سوهان بزنم بابا یگا زبان درازش رو روی سندان قرار داد آهنگر هم به تیز کردن زبانش پرداخت و اون رو طوری تیز کرد که صدای جادوگر خیلی خیلی نازک باشه بابا یاگا به طرف صخر اومد و با صدای نازکش شاخه بریده رو صدا کرد و گفت شاخه بریده شاخه بریده بیا کنار ساحل و غذا بخور شاخه بریده فکر کرد مادرشه به طرف ساحل اومد بابا یاگا اون رو دستگیر کرد و دوباره در کیسهش انداخت و فریاد زد دیگه نمیتونی منو گول بزنی. بدون اینکه جایی بیایسه، یه راس به خونش رفت و سر کیسر رو باز کرد و به دخترش گفت: بیا بگیر. این همون شخص جنایتکاریه که ماهی‌ها رو سید میکنه. باید اجاق رو روشن کنی و اونو کباب کنی تا نهار کباب مفصلی بخوریم. وقتی دستورشو داد، از اونجا حرکت کرد. دخترش آتیش روشن کرد، پارو آورد و به شاخه بریده گفت: تو باید روی پارو قرار بگیری. تا تو رو میونه اجاق قرار بدم شاخه بریده روی پارو قرار گرفت ولی پاهاش رو به طرف هوا بلند کرد دختر جادوگر فریاد زد اینطور نه اینطوری نمیتونی بری وسط اجاق شاخه بریده دو پاش رو محکم گرفت دوباره دختر جادوگر فریاد زد اینطور نه شاخه بریده پرسید پس چطور بیا روی پارو تا من یاد بگیرم دختر روی پارو قرار گرفت و همونجا دراز کشید شاخه بریده هم پارو رو بلند کرد و اون رو در میونه اجاق انداخت و در اجاق رو طوری محکم کرد که نتونه فرار کنه. موقعی که از خونه خارج میشد، بابا یاگا رو دید که به خونش نزدیک میشه. ناچار بالای درختی رفت و خودش رو بین شاخه ها قایم کرد. بابا یاگا داخل خونه شد. مرتباً بومی کرد. همه جو بوی کباب به دماغش میخورد. کباب رو برداشت و همه اونو خورد و اسخونهاش رو میونه حیاط ریخت و با پاهاش لگدمالش کرد و فریاد زد من دارم تفریح میکنم لگد مال میکنم شاخه بریده رو کباب کردم و خوردمش ولی شاخه بریده از بالای درخت فریاد زد هرقدر میتونی تفریح کن و خوش باش رو لگد مال کن تو دخترتو خوردی از خونه او سیر شدی وقتی جادوگر این حرف را شدید برا شفت و به طرف درخت رفت. اون قطر تنه اون رو با خشم و غذب دندان زد که دندان هاش شکست. ولی به درخت کوچکترین آسیبی نرسید. اون وقت بابا یاگا پیش آهنگر رفت و گفت آهنگر برای من یه تبر فولادی درست کن. اگه درست نکنی بچه هات رو میخورم. آهنگر به وحشت افتاد و یه تبر فولادی درست کرد. بابا یاگا به طرف درخت اومد و اون رو با تبر تراشید. اما شاخه بریده از اون بالا فریاد میزد. روی درخت نزن. روی سنگ بزن. جادوگر به حرفش اعتنای نکرد. باز شاخه بریده گفت. روی درخت نزن. روی سنگ بزن. تبر اونقدر روی سنگ خورد تا کاملا از کار افتاد. جادوگر از خشم فریاد زد و تبر رو برداشت و پیش آهنگر اومد تا اونو تیز کنه. بریده، ناگهان متوجه شد که درخت کج شده چون جادوگر تقریبا اونو شکسته بود و اون میبایستی قبل از اون که وقت بگذره خودشون نجات بده در همان هنگام یه دسته از غازها در هوا به پرواز در اومدند شاخه بریده فریاد زد و گفت آهای غازها غازها هر کدومتون یه پر به من بدین من میخوام همراه شما پرواز کنم و برم پیش پدر و مادرم اگه این کارو بکنید هر چه بخواید بهتون میدم غاز هر کدوم یه پر بهش دادند با این پرها شاخه بریده نتونست جز نصف بال برای خودش درست کنه بعد دسته دیگه از غازها سر رسیدند شاخه بریده فریاد زد آهای غاز ها هر کدوم از شما یه پر به من بدید من میخوام با شما پرواز کنم اون وقت هر کدوم از غاز یه پر براش فرستادند. بعد دسته های سوم و چهارم غازها فرار رسیدند و هر کدامشون یه پر به شاخه بریده دادند. شاخه بریده دو بال برای خودش فراهم کرد و با غازها به پرواز درومد. جادوگر از پیش آهنگر برگشت و به تراشیدن و قطع کردن درخت پرداخت. اونقدر تبر زحد تا درخت صدا کرد و روی جادوگر افتاد و او را کشت. اما شاخه بریده به همراه غازها به خونش رسید و پدر و مادرش از دیدنش کلی خوشحال شدند و کنار میز رفتن و جشن بزرگی برپا ساختند و شادمانی کردند و مقدار زیادی به غازها جوی سیاه بخشیدند تا اونا بخورند و سیر بشند.